و پس این افسون شگرف همچنان که آلوریک به همراه آن دو دیوانه به سوی دشتهایی می که مدتها قبل فرمان روای آنها بود صدای شیپورهای سرزمین پریان تمام روز در ارل تنین میانداخت. و هرچند تنها اوریون میشنید، اما صدای شیپورها هوا را میلرزاند با موسیقی زرین شگفتش آن را به تموج در میآورد. و روز را سرشار از شگفتی می کردند که دیگران هم حضورش را حس می کردند. بنابراین دختران جوان از پنجرهشان به بیرون خم می تا ببینند چیست که بامداد داد را افسون کرده است. اما همچنان که روز می افسون موسیقی ناشنیده کاهش می و جای خود را به احساسی می داد که بر تمامی از هان در ارل سنگینی می کرد. و گویی نزدیک شدن فضای ناشناخته ای از شگفتی ها را پیشگویی گویی می کرد اوریون در سراسر زندگیش صدای نواخته شدن این شیپورها را به هنگام غروب شنیده بود مگر در روزهایی که بعد رفتار کرده بود اگر صدای شیپورها را به هنگام غروب می شنید می که در آن روز خوب بوده است اما امروز از اول بامداد به صدا در آمده تمام روز به نواختن ادامه داده بودند همچون نمایشی عمومی پیش از یک رژه و اوریون از پنجره به بیرون نگریست و هیچ ندید و شیپورها به نواختن ادامه میدادند و چیزی را اعلام میکردند که نمیدانست چیست شیپورها اندیشه های اوریون را به جدایی از امور زمینی فرا میخواندند که برای انسانها مهم هستند به جدایی از هر چه سایه می سازد. آن روز با هیچ انسانی سخن نگفت بلکه به میان جنهایش و موجودات پریانه ای رفت که به دنبال جنها به این سوی مرز آمده بودند و همه آنانی که او را می دیدند متوجه نگاهی در چشمهایش می شدند که نشان می داد در قلمروهای دوردستی دور است که از آنها می حراسیدند و اندیشه براستی دور از آنجا و بار دیگر نزد مادرش بود و اندیشه های مادرش با او بود و عشقی را بیرون میریخت که سالها در گذر تند خود بردشت های ما که لیرازل هرگز این گذر را درک نکرد از او دریخ کرده بودند اوریون به گونه ای می میدانست مادرش همان نزدیکی و در سراسر آن صبح شگفتنگیز اشباه روشن خلنگزار بیقرار بودند و جنها گرد آشیانه هایشان می پریدند چون صدای شیپورهای سرزمین پریان با جادو در هوا تنین میانداخت، و هرچند نمی توانستند آن را بشنوند خونشان را به جوش میآورد اما نزدیک غروب قریب البقو بودن دگرگونی عظیمی را حس کردند و همگی خاموش و گرفته شدند و چیزی اشتیاق موتن جادوی دور دستشان را به سراغشان آورد گویی ناگهان نسیمی از دریاچههای ژرف کوهستانی سرزمین پریان به چهرهشان خورده بود و در جستجوی چیزی جادویی در کویها بالا و پایین میرفتند تا تنهاییشان را در میان چیزهای مادی تسکین دهند اما هیچ چیز شبیه های زاده شده از افسونی که در شکوهشان بر فراز دریاچههای سرزمین پریان میروید. نیافتند و مردم روستا آنها را همه جا میدیدند و در آرزوی فرارسیدن دوباره روزهای به تمامی زمینی پیش از آمدن جادو به ارل بودند و برخی از آنان به سوی خانه نجات دهنده شتافتند و به همراه او از شر تمامی اشباه تقدیس نشده ای که در کویهایشان بود و تمامی جادوی که در هوا متجلی و تنین انداز بود در میان اشیای مقدسش پناه گرفتند و او با نفرینهایش که روشنایی و کم و بیش اشباه روشن بی هدف خلنگزار را پس میراند و حتی در فاصله اندکی جنها را هم میترساند از آنها نگاهبانی میکرد اما جنها میدویدند و تنها کمی دورتر آن گروه کوچک مردم دور نجات دهنده جمع شده بودند و از او در برابر تهدیدی که با گذر روز کوتاه هوا دم بدم از آن سرشارتر میشد. تسلی میخواستند. دیگران به سراغ نارل و پیران گرفتار ال رفتند تا بگویند ببینید نقشه های شما چه کردند ببینید چه به روستای ما آورده اید و هیچ کدام از پیران فورا پاسخ ندادند بلکه گفتند باید با یکدیگر مشورت کنند چون به سخنانی که در شورایشان گفته می شود اعتماد جرف دارند و به همین انگیزه دوباره در کارگاه نارل گرد آمدند. اکنون هنگام غروب بود، اما نخورشید هنوز غروب کرده بود و نکار نارل تمام شده بود. و آتشش داشت آغاز به درخشیدن با رنگی جرفتر در میان سایه هایی می کرد که به کارگاهش وارد شده بود. پیران آهسته و با های جدی می آمدند. بخشی به خاطر اینکه برای پوشاندن حماقتشان از نظر روستاییان، به رمز و راز نیاز داشتند و بخشی به خاطر آنکه اینک جادو چنان به وضوح در هوا شناور بود که از قریب الوقع بودن رویدادی شوم می ترسیدند. در شورایشان در اتاق درونی نشستند و در همین حال خورشید پایین میرفت و اگر میتوانستند توانستند بشنوند شیپورهای سرزمین پریان واضح و فیروز مینواختند می نواختند. و آنجا در سکوت نشستند چون چه می توانستند بگویند؟ آرزوی جادو کرده بودند و اینک آمده بود جنها در تمامی کوچه ها پراکنده و ارواح وارد خانه ها شده بودند و اکنون شبها از اشباه روشن خلنگزار دیوانه شده بود و هوا از جادویی ناشناخته سنگینی می کرد چه می توانستند بگویند؟ و پس از مدتی نارل گفت نقشه جدیدی بکشند چون مردمی سطحی بودند اما اکنون موجودات جادویی در سراسر ایرل پراکنده شدهاند و هر شب تعداد بیشتری از سرزمین پریان به آنها می پیوندند و اگر نقشه ای نکشند چه بر سر شیوه های خواهد آمد؟ و کلام نارل به آنها شهامت بخشید هرچند تهدید شوم شیپورهایی را که نمیتوانستند صدایشان را بشنوند حس میکردند. اما صحبت از یک نقشه به آنها شهامت بخشید چون میپنداشتند میتوانند بر علیه جادو نقشه بکشند و یکی پس از دیگری برخاستند تا از نقشهی سخن بگویند. اما به هنگام غروب صحبتها فرو مرد و حراسشان از غریب الوقع بودن یک رویداد اینک به آگاهی ویجهی تبدیل شده بود. نخواست اوت و ترل که در جنگلها آشنا با رمز و راز زیسته بودند، آن را دریافتند، همه می که چیزی دارد می آید، هیچ کس نمی چه، و همه خاموش و سرگردان در تیرگی غروب نشسته بودند. نخست لورولو لو آن را دید، تمام روز رؤیای دریاچه های سبز سرزمین پریان را دیده بود، و همچنان که از زمین دلزده می شد، تنها به بالای یکی از برج‌های قلعه ایر رفته بود و بر شیروانی نشسته بود و آرزومندانه به سوی خانه خیره شده بود و همچنان که به دشتهایی که میشناسیم خیره شده بود خط تابناک را دید که به سوی ایر پایین میآید و همچنان که بر شیارهای زمین موج میزد صدای ضعیف زمزمه های کهن بسیاری را شنید چون خط تابناک با خود همه گونه خاطره آهنگ های کوهن و صداهای از دست رفته را می آورد و آنچرا که زمان از زمین گرفته بود به دشتهای های ما باز می خط تابناک همچون ستاره غروب به سوی لورولو می آمد و رنگ را باز می تواند که برخی برای زمین آشنا و برخی حتی برای رنگین کمان ما ناشناخته هستند بنابراین لورولو ناگهان دریافت که مرز سرزمین پریان است و با دیدن خانه افثانهیش تمامی گستاخیش به سویش بازگشت و لرزه خندهاش اش چنان از جایگاه بلندش برخاست که همچون بال زدن پرندگان زیر شیروانی بر سراسر سقف های زیر پایش تنین انداخت و جنهای دلتنگ درون کبوترخانه از شنیدن صدای شادی او شاد شدند هرچند علت آن را نمیدانستند. و اکنون اوریون صدای نواخته شدن شیپورها را چنان بلند و نزدیک میشنید، و چنان فیروزمندی و شکوهی در نوایشان بود و چنان ناله آرزومندی میکردند که دریافت چرا می نوازند؟ دریافت که ورود شاه دختی از راسته پریان را اعلام می کنند. دانست که مادرش به سوی او بازگشته است زیراندریل بر بلندای تپش این را می‌دانست، با جادو از پیش فهمیده بود و همچنان که شامگاهان به پایین مینگریست، خط ستارگون شفقهای ساخته شده از غروبهای کوهن از دست رفته تابستانی را دید که به سوی ارل می لغزید. از دیدن این موجود درخشان که بر گزرگاه های زمینی جاری بود کم و بیش شگفت زده شد هر چند خیردش به او گفته بود که سرانجام خواهد آمد و در یک سو هایی که میشناسیم را میدید سرشار از رویدادهای آشنا و روزمره و در سوی دیگرش از بلندایش در پشت آن مرز هزار رنگ شاخ و برگ درختان و گلهای جادویی سرزمین پریان و چیزهایی را میدید که بر روی زمین حتی هزیان یا الهام هم نمیبیند و موجودات افسانهای سرزمین پریان را میدید که خرامان پیش می آمدند و خود بانویش، لیرازل، همچنان که شفق از بازوان گشوده اش جاری بود گامزنان بر دشتهای ما پیش آمد و با خود سرزمین پریان را آورد با دیدن این منظره و تمامی شگفتی های روان به سوی دشتهای ما، و یا برای بازگشتن به خاطرهای کوهن به همراه شفق و یا به خاطر شنیدن ترانه های کوهنی که همراه با شفق می لذت و لرزه غریبی زیراندریل را فرا گرفت و هرچند جادوگران گریه نمی کنند گریست و اکنون از پنجره های بالایی خانه ها، مردم کم کم خط درخشانی را می‌دیدند که شفقی زمینی نبود درخشش شگرفی را دیدند که به سویشان جاری بود، آهسته میآمد. گویی به سختی بر توده ناهموار زمین می لغزید. هر هرچند با گذشتن از سرزمین های مجاز شاه پریان از سرعت ستاره دنبالدار پیشی گرفته بود، و از غرابت آن کمتر احساس شگفتی میکردند چرا که خود را در میان آشناترین چیزها یافتند، چون خاطرات کوهنی که جلوی آن شناور بود همچون بادی که پیش از تندر میبزد با زربه ناگهانی بر قلب ها و خانه هاشان فرود آمد و هان یک بار دیگر در میان چیزهای بسیار قدیمی و از دست رفته میزیستند. و همچنان که آن خط روشنایی نازمینی پیشتر میآمد صدایی همچون صدای باران بر برک ها صدای آه های قدیمی دوباره کشیده شده، صدای زمزمه اشاق قدیمی دوباره تکرار شده در پیش آن نواخته میشد. و بر مردمی که همه در سکوت مشتاقانه و بازگشته به عقب در زمان از پنجرهشان به بیرون خم شده بودند، احساسی آرام بخش فرود آمد، احساسی که ممکن است در یک باغ باستانی، در کمین برگ های عظیم پلام باشد پاورقی داک گیاهی با برگ های پهن که برگهایش برای تسکین سوزش ناشی از تماس با برگ گزنه بکار برده می شود ادامه داستان احساس برگ های پلام هنگامی که آن که از گل هایشان نگاهداری می و یا سایبان را دوست داشته دیگر رفته است آن خط سرشار از نور ستارگان و عشقهای کوهن، هنوز بر دیوارهای ارل نکوفته و بر خانه ها نریخته بود اما چنان نزدیک شده بود که از همان فاصله هم گرفتاری‌های های روزانه مردم را از ذهنشان شسته بود گرفتاری هایی که آنها را در اکنون نگاه می‌داشت. اینک مردم مرهم خاطرات روزهای گذشته و دستهای مبارکی را حس که مدتها پیش پژمرده بود بزرگترها به طرف دخترکهایشان دویدند که در کوچه تناب بازی میکردند و خواستند آنها را به خانه بازگردانند از ترس ح دخترانشان به آنها نگفتند چرا چنین میکنند و هشداری که در چهره مادرانشان بود کودکان را دمی ترساند سپس برخی از آنها به شرق نگریستند و آن خط تابناک را دیدند و گفتند سرزمین پریان است که می آید و به تناب ادامه دادند و سکهای شکاری می دانستند هرچند نمی توانم بگویم چه می دانستند. اما تأثیری همچون تأثیر ماه بدر از سرزمین پریان به آنها رسیده بود و چونان پارس می کردند که در شبهای محتابی در دشتهای شناور در نور ماه پارس می کنند. و های خیابانی که همواره مراقب بودند مبادا چیز غریبی بیاید فهمیدند چه شگفتی عظیمی نزدیک آنهاست و آنها را به تمام دره اعلام کردند همان هنگام چرمساز پیر که در کلبهش در دشتهای ما از پنجره به بیرون می نگریست تا ببیند چاه یخ نزده باشند بامدادی بهاری از پنجاه سال پیش را دید و همسرش را دید که یاس میچید چون سرزمین پریان زمان را از باغش رانده بود و اینک زاغها برجهای ار را ترک کرده بودند و به سوی غرب پرواز میکردند و زوزه سگهای شکاری و آعای سگهای کوچکتر هوا را انباشته بود ناگهان این صداها خاموش شد و سکوت جرفی را فرا گرفت. گویی ناگهان برف سنگینی باریده بود و از میان آن سکوت نوای آهنگ کهان غریبی به نرمی برخاست و هیچکس کس سخن نمی گفت. سپس زیراندرل که کنار در کلبهش نشسته بود و چانه اش را بر دستهایش گذاشته خیره می نگریست دید که خط درخشان به خانه ها برخورد کرد و ایستاد. از هر دو سوی خانه ها جاری بود اما در برابر خود خانه ها متوقف شده بود گویی با چیزی نیرومندتر از جادویش روبرو شده بود اما خانه ها تنها برای لحظه‌ای آن مد شگفتانگیز را عقب نگاه داشتند چون خط تابناک همچون شهابی سوزان از جنس فلزی ناشناخته با انفجاری از آنها گذشت و کفی غیر زمینی به هوا برخاست از خانه ها گذشت و آنها را شگفتانگیز و غریب و جادو شده پشت سر گذاشت مانند خانههایی که با بیداری ناگهانی خاطره ای موروسی از درون دورانی کهان به یاد می‌آیند. و سپس پس دید پسری که از او پرستاری کرده بود با نیروی تواناتر از نیرویی که سرزمین پریان را پیش میراند جذب شد و به درون شفق گام گذاشت دید که در میان آن نور شکومند جاری در دره بار دیگر با مادرش دیدار کرد. آلوریک هم همراه او بود. آلوریک و لیرازل از موجودات افثانه ای که در تمامی راه از دره های جرف های سرزمین پریان شاه را همراهی کرده بودند جدا افتاده بود. و آن قبار سنگین پیری، و نیز تمامی رنج سرگردانی از آلوریک فرو ریخته بود. او نیز به همراه ترانه‌های قدیمی و آواهای از دست رفته دوباره در روزهای گذشته بود. و هنگامی که لیرازل و اوریون پس از آن همه جدایی به هم رسیدند، سیروندرل نتوانست شاه شاهدخت را ببیند، چون هرچند اشک‌هایش همچون ستاره‌ها می‌درخشیدند، اما درخشش آن اشکها، در میان آن همه نور ستارگان که در مرز فروریخته و گرداگردش آگردش به چشم نمی آمد. اما هرچند این را نمیدید نوای آن ترانه ها را با گوش های به وضوح می شنید. ترانه هایی که پس از مدت‌ها از میان درههای سرزمین پریان به دشتهای ما باز می گشتند. ترانه ها که همگی از کودکستان های زمین گم شده بودند، اكنون درباره دیدار لیرازل و اوریون زمزمه می‌کردند و نیو و زند سرانجام از تخیلات خشکشان آسوده شده بودند چون اندیشه‌های وحشیشان در آرامش سرزمین پریان غرق شده بود و همچنان که به هنگام غروب بازها بر درخت‌هاشان می‌خوابند هاشان خفته بود سیروندرل آنها را دید که کمی دورتر از آلوریک کنار یکدیگر بر جایی ایستاده اند که در گذشته لبه پرتگاه ها بود و واند در میان گوسفندان زرینش ایستاده بود که شیره شیرین و عجیب گلهای شگفتانگیز را میمکیدند. لیرازل با تمامی این شگفتی ها به سوی پسرش آمد و با خود سرزمین پریان را آورد که پیش از آن هرگز حتی به پهنای یک گل استکانی از مرز زمین پیشتر نیامده بود. و مكانی که در آن دیدار کردند، باغ گل سرخ کهنی در زیر برج‌های ارل بود، جایی که زمانی در آن قدم زده بود، و از آن پس دیگر هیچ کس به آن اهمیت نداده بود. اکنون علفهای هرز بلندی در راه‌های آن روییده بود و حتی آنها هم با سرمای پایان نوامبر پژمرده بودند. ساقه‌های خشکشان به هنگام راه رفتن اوریون در میانشان خشخش می‌کرد. و دوباره با رنگ قهوه‌ایشان در پس او راه فراموش شده را میپوشاندند اما پیش روی او گل گلسرخای بخشی بزرگ در جلال تابستان در تمامی شکوه و زیباییشان میشکفتند لیرازل و اوریون بین زمستانی که پیش پای لیرازل عقب میرفت و فصل قدیمی گل‌های سرخ که به باغ باز میگشت دیدار کردند باغ پشمرده دمی در پشت سرش زرد باقی ماند، سپس سراسر در شکوفه ها درخشید و ترانه شاد وحشی پرندگان از ستها سبززار بازگشت گل سرخ های قدیمی را خوش آمد گفت و اوریون دوباره به زیبایی و درخشش روزهایی بازگشته بود که حافظه اش سایه های دلپذیر و مبهمشان را همچون عزیزترین گنجینه های انسان که در آنها قفل شده و کلیدش را ندارد گرامی داشته بود سپس سرزمین پریان بر ایرل فرو ریخت تنها جایگاه مقدس نجات دهنده و باغ پیرامونش همچنان زمینی باقی ماند جزیره کوچکی احاطه شده با شگفتی همچون کوهی سخریی که سراسر از مه برخاسته از دره‌ها پوشیده شده و فقط قله بیرون مانده و در تنهایی خود به ستارگان خیره شده است چون آوای زنگش افسون و شفق را تا فاصله اندکی در پیرامونش واپس میراند در آنجا شادمان و راضی و نه کاملا تنها در میان اشیای مقدسش زندگی کرد چون معدودی که آن مد جادویی از کنارشان گذشته بود در آن جزیره مقدس میزیستند و به او خدمت می‌کردند و او بیشتر از مردم عادی عمر کرد اما نه به اندازه سال‌های عمر جادو از آن پس فقط یک نفر از مرز گذشت تپه جادوگر روندرل درست بر مرز قرار داشت در شب‌های ستاره‌ای زیروندرل سوار بر جارویش می‌رفت تا در مکانی نافرسودنی بانویش را به همراه آلوریک و اوریون ببیند گاهی شب هنگام با جارویش از آنجا باز می گشت آنکه هیچ کس در دشتهای زمینی او را ببیند مگر اینکه به تصادف متوجه یک دم خاموش و روشن شدن ستارهی از پس ستاره دیگر بشوید در این هنگام زیراندریل از برابر ستارگان میگذرد و کنار درهای کلبه ها نشیند و برای آنان که به شنیدن در باره شگفتی های سرزمین پریان اهمیت می دهند های شگفتانگیز میگوید شاید من هم یک بار دیگر صدایش را بشنوم و شاه پریان که با پس این افزون جهان آزارش را به کار برده و دخترش را یک بار دیگر شاد کرده بود بر تخت پرعظمتش نشسته بود و آرامشی را تنفس می کرد که سرزمین پریان در آن شناور است و سراسر قلم روش در آن آرامش بی زمان رویاهایی میدید که برکه های سبز ژرف در تابستان به سختی می توانند تصورش را بکنند. و ارل نیز به همراه بقیه سرزمین پریان رویا میدید و بدین ترتیب از انسان انسانها بیرون رفت. چون دوازده مردی که عضو شورای ایرل بودند از پنجره آن اتاق درونی کارگاه نارل که در آن نقشه میکشیدند به بیرون نگریستند، و آن که به سرزمین های آشنایشان خیره شده بودند دریافتند که این سرزمین‌ها دیگر دشت هایی که می نیستند سفر به دنیای پر رمز و راز افثانه ها. قصه‌هایی هایی از غول‌ها و کتوله ها ماشره از جادوگر ها سفر به سرزمین جادویی و تلزم شده رفتن به دنیای پریان ماجراجویی در سرزمین زیر دریا همه اینها و بیش از اینها در کانال تلگرامی هزار افسان افثان. داستان های افسان صوتی